العلال به بتشکین درس بعدی ما اعلال بسکون هست خب اعلال هر تغییری که روی حرف اله بیاد بشم میگن اعلال چه حرکتش برداشته بشه چه حرف اله تبدیل به حرف دیگه یه شه چه کلان حصف بشه بشم میگن اعلال در این درس اعلال بسکون رو یاد میده. یعنی زمانی که حرف اله رو ساکن میدهیم و ما چه زمان حرف اله رو ساکن میدهیم این قاعده رو در قاعده 16 کتاب یعنی در این درس توضیح میدن. شش مثال رو آورده است. امثله رو بخونیم یادوم الودو بالمجامله. یادومو در اسوده، یادومو، یا ساولو. فعلای مزاره یا بر وزن یفعلوا هستند یا یفعلوا یا یفعلوا. ولی در این فعل موتل عجواف میبینیم که اینو الفعل که همون عین حرکت داره در یف علو، اینجا اینو الفعل بعد حرکت میداش در اینها میبینیم که برخلاف فعله السحی فا الفعل اینجا حرکت داره بعد از علامت مزاره وی اینو الفعل حرکتی نداره ولی در صحیح ها اینجوریست یز ریبو ببینیم زاک فاول هل ساکن است برعکس این الفل را حرکت داره یز ریبو یحمدو. مدو ولی اینجا یدومو دال حرکت داره واب نداره پس یدومو این اعلان بسکون هست در از حرکتی داشته ولی اینجا اعلان رخ داده یدومو الودو بالمجامل یدومو که شده یدومو چرا شده؟ در قائده نگه یزیدو یز يز یدو در اس بوده شده یزیدو سکانو و مصر کل عام القطل المصریو له المقام الاول المقام فرقی نداره چه ماضی باشه این اعلال به سکون در فعل فقط روخ نمیده المقام مقام در اس بوده مقوم مقوم حرف حركة الواو رو دادا بقاف حركة الواو رو دادا بقاف شده مقام واو بك درعة الحركة داشته و الآن ما قبلش متحرك بعساس قاريك قبل الخدين تابيل بالف مشي كمشي مقام اعمل الواجب رغبة لا مخافة مخافة در اصل بوده مخ وفتند مخ وفتند مخ وفه حرکت از واب رفته به حرف ما قبلش که صحیح هست خواه هست شده چی؟ مخ وفتند وابی که در اصل حرکت داشته و الان ما قبلش فتح داره تبدیل به علیف میشه میشه مخافتند. در مثال پنجم، ایج المال که مبدول و نوع که مسئولن مسئولن هم اسم مفعول صانعیسونو هست اسم مفعولش میشه مفعول، مسئول یک واف که مال خود کلمه هست، یک واف که مال اسم مفعوله میشه مسئول زمده از واف میره به ما قبل، به صاد داده میشه دوتا واف ساکن کنار هم میبوند، اجتماع ساکره پیش میاد واف دومه هست میشه، میشه مسئولن در مثال آخری اجتر مایراهو الاقلاعو معیبن معیبن هم اسم مفعول عابیعیبو هست در اسم بوده معیوب مفعول معیوب حرکت از یا نفت شده بعید یا و هر دوتا ساکر دارد الان دیگه التقای ساکرین رخ داد و حس حسب میگردد بیشه مع یوب مع یوب عید خاطر مناسبت با حرکت یا چون یا حرکت مناسبشی شدید که ماقمش کسر داده داد داد شدید این کسر داده می شود. می شود معیب. می چی؟ معیوب می معیب به خاطر این که حرکت مناسب کسر ما قبلش یا حرکتی که مناسب هست یا کسر هست. لذا پس آین کسر داده می شوید. که می معیب. اسم مفعول عجو اینجوری هست. ماعیبی مبیع، عابیعی معیب. القاین به یا بر و قایدی. اگر کان الحرف المعتل فی کلمه متحرکن، حالا چندش توضیح ده که چه زبان با حرکت حرف المعتل نقل بکنیم. علاوه بر سکن رخ بده. اذا کان الحرف المعتلو في کلمتین متحرکند زمانی که حرف معتل در کلمه متحرک باشد مانند یدومو یزیدو مقام مخافه مسور و معیب و کان قبله حرف صحیح و ساکن و ما قبل اون حرف معتل حرف صحیح باشه کنند همین ششتا کلمه یدومو قبل ازواف دیگه داله هم صحیحه حرف معتل ليس حرف صحيح وهم الك داره ياد و قبله حرف صحيح ساكن وما قبل حرف الا حرف صحيح ساكن يباشت سكن المعتل ساكن بنقل حركته إلى الحرف الصحيح بنقل ددن حركتش بحرف صحيحش بحرف صحيح حرف معتل حركتش رو بحرف الصحيح ساکن میدیم خودش ساکن میشه و یوسف اعلان ها به و این عملیات اعلاله به تسکیل نامیده میشهد به سکون چه اعلالی روی حرف این نرخده سکون حرکتش به حرف صحیح داده شد و خودش ساکن ماند. لذا این عملیات رو بگن اعلاله به سکون وقتا با پیروز باشید و بیدوارم این درس رو هم خواهیده باشید